موسیقی به نام خدای یگانه مهربان سلام ناگفته پیداست که افسانه های هر قوم و ملتی ویژگی های خاصی داره که اونها رو از افسانه های اقوام و ملت های دیگه متمایز میکنه در رمیه هزار افسان از آن سوی سبلان زیبا از مردمان و با فرهنگ سرزمین آذربایجان افسانهای ای رو براتون نقل می کنم به نام قالیچه پرنده برگرفته از کتاب افسانه‌های آذربایجان جلد سه با ترجمه ای از حمید بخشمند در زمانهای قدیم پیرزنی در کنار تنها نوش که پسری به نام احمد بود زندگی میکرد اونها درآمد چندانی نداشتند ننه احمد روزی یه جفت جوراب میبافت و اون رو به در و همسایه میفروخت بعد پولش رو به احمد میداد تا با اون خورد خوراکی تهیه کنه و هر دو شکم خودشون رو سیر کنه. روزگار بر اونها به همین صورت میگذشت که یه روز ننه احمد مقداری پول که از بابت فروش یه جفت جراب به دست آورده بود به احمد داد تا به شهر بره و خوراکی تهیه کنه. احمد صبح افتاب نزده پول رو گرفت و به طرف بازار شهر که فاصله زیادی با اونها داشت برا افتاد. از چند کوچه پس کوچه که گذشت چشمش به مردی افتاد که با بیرحمی تمام به جون سگ کوچولوی افتاده بود حالا نزن و کهی بزن سگ کوچولو که نای حرکت نداشت به ناله کردن افتاده بود احمد طاقت نیاورد و به مرد نزدیک شده پرسید آقا این حیوان زبون بسته چه گناهی کرده که اینجوری عذیتش میکنی مرد با بی اعتنایی پاسختاد اینش به خودم مروده بعد سرفا پای احمد رو برنداز کرده گفت اگه خیلی درت به حال این زبون بسته میسوزه اونو از من بخر و با خودت ببر احمد لهظهای سکوت کرد هرچند درش به حال سگ بیچاره میسوخت اما نمی نمیدونست چه تصمیم بگیره به پولهایی که در دست داشت نگاهی انداخت با خودش فکر کرد اگه این پولا رو جای این حیوون بدم وقت جواب نظر رو چی بدم مرد که سکوت و تردید احمد رو دید با لحن خاصی پرسید بالاخره این حیوان رو میخوایی نه احمد به سگ کچلو که حالا دیگه حتی نای نالی کردن هم نداشت نگاهی انداخت و بی اختیار پولاش رو به طرف مرد دراز کرد مرد به تندی پولا رو گرفت و از اونجا دور شد احمد سگ کوچولو رو از زمین بلند کرد و به طرف خونه برا افتاد دمدمای غروب بود که به نزدیکی خونه رسید ننه از دور احمد رو که دید به پیشوازش رفت و وقتی دید احمد دست خالی و به همراه سگ کچلوی برگشته با تعجب پرسید این حیوان چیه پس کو بزر احمد با شرمندگی گفت ننه ننه من من پول غذا رو دادم و این سگ کوچولو رو گرفتم اگه این بیچاره زبون بستر رو نمی خریدم، تا حالا زیر چوب و لگد اون مرد بیره مرده بود ننه احمد بی اعتناب حرفاش با عصبانیت گفت تو حق نداشتی پول خورد و خوراکمونو به جای اون حیوان بدی احمد با شرمندی گفت میدونم ولی ولی این حیوان بیچاره ننش با عصبانیت به داخل اتاق رفت و احمد از ادامه صحبت باز اون شب ننی احمد تا نزدیکی های سو بیدار موند و یه جفت به دیگه با. فردا صبح ننگ احمد یه جفت جراب رو به در و همسایه فروخت و پولش رو به احمد داد و گفت این دفعه اگه بدون غذا خونه بیای هرچی دیدی از ششم خودت دیدیا احمد به علامت اطاعت تکون داد پول رو گرفت و دوباره به طرف بازار شهر برافتاد هنوز مسافت زیادی راه نرفته بود که دید چند نفری گربهای رو محاصره کرده و با چوب و چماق به جون حیوان بیچاره افتاده بودند حالا نزن کی بزن حیوان بیچاره وحشت زده به این طرف و اون طرف میدایید ولی راه گریزی نداشت و مشت و لگت از هر طرف روی سر حیوان بیچاره فرود میومد احمد این بارم طاقت نیاورد و جلو رفت و از مردی که پیشبند سفیدی روی لباسش پسته بود و سیبیلای کلفت و سیاهش تا بناگوش کشیده شده بود پرسید آقا آقا آقا این ایوون بیچاره چهی چه و تری به شما فروخت که اینجوری داریم ناقصش میکنین آخه مرد که معلوم بود قصاب مهلز با خشم اصابانیت نگاهی به احمد انداخت و گفت حقشه حقشه که ناقص بشه احمد پرسید آخه آخه برای چی مگه اون چیکار مرد غصاب کلامش رو قطع کرد و گفت همین حیوان بیچاره که شما مگی چند روزه که گوشتای دو من کش میره و با تکید و خشم اضافه کرد اونم گوشتای لخم لاخم و بعد با چوب زربی محکمی به حیوان زبون بسته زد حیوان نوری خفیفی کرد و نقش بر زمین شد احمد طاقت نیاورد و گفت من حاضرونم از شما بخرم و بلا فاصله پولش رو به طرف مرد قصاب دراز کرد و گفت بیا اینم پولش مرد قصاب صورتش از لبخند باز شد و چوب دستی خودش رو به پرد کرد و پول رو از احمد گرفت و دوستاش از اونجا دور شد احمد خم شد و گربه نیمه جون رو به بغل گرفت و به طرف خونه گرافت ولی توی راه مدام توی این فکر بود که این دفعه جواب نن چی بده تا خیلی از زمانی میشه ساعت بعد احمد به نزدیکی خون رسید ننش در آستانه در منتظر ایستاده بود و این بار هم وقتی دید احمد به جای خوراکی گربهی رو به همراه خودش برده خیلی عصبانی شد طوری که خون خونش رو میخورد احمد به آرومی گفت نه, نه نه باور کن و ننش با لحن سرزنش کننده ای گفت پسر یه لچباز بازم یه مهمون دیگه با خود آوردی آخه اخه مگه نمی بینیم ما شکم خوادمونو داریم به زور سیر میکنیم. ها احمد دهان باز کرد و چیزی بگه ولی ننش چنان عصبانی بود که احمد فکر کرد بهتر چیزی نگه و اونو بیشتر عصبانی نکنه ننه احمد تمام شب رو قرولون کرد و بالاخره هم طاقت نیاورد و به احمد گفت همین فردا باید این حیوونا را به جنگل ببری و همونجا بذاری احمد چارهای جز قبول حرف ننش نداشت و با خودش فکر کرد پیرزن بیچارا هق است، از دست من عصبانی باشه ما نون خودمونو در میاریم اون وقت چطوری میتونیم این زبون بستهها را سیر کنیم آه باید همین فردا خواب پیلکای احمد رو سنگین کرد و چند لحظه بعد احمد به خواب امیری فرو رفت. فردا کله سهر احمد از خواب بیدار شد و گربه و سگ کوچولو رو به طرف جنگل برد اونا رفتن و رفتند تا به یک کوه بلند رسیدن از اونجا صداهای گنگی به گوش میرسید احمد جلوتر که رفت متوجه شد سه دیو در حال جروع کردنن کردن از ترس خواست فرار کنه که یهو سگ کوچولو شروع کرد به پارس کردن دیوا که متوجه حضور اونا شده بودن با قدم های بلند و سنگین به احمد نزدیک شدند. احمد حرکتی به پاهاش داد و یک قدم برداشت ولی صدای کلفت و, و نخراشیده یکی از دیوا اونو سر جاش میخوب کرد آی پسر احمد با لکنت زبون در حالی که پاهاش از شدت درس به زختی میدرزید گفت بله دیو اولی گفت نترس با تو کاری نداری دیو دوم گفت جلوتر یا جلوتر, جلوتر جلوتر و دیف اسوم گفت تو باید بین ما قضاوت کنی احمد که حالا دیگه کمی ترسش ریخته شده بود گفت اه اه اه چشم ولی ولی قضاوت درباره چی؟ دیو اولی گفت ما ستا هستیم ولی دو چیز گرمبه داریم فقط دوتا دیو دوم گفت یه خالیچه یه و یه انگشتر سهرامیز و اونا رو به احمد نشون دادن دیو سفون گفت اگه روی این چه بشینی و بگی ای غالیچه یه سهرامیز منو به فلان جا ببر همون ساعت تو رو به اونجا میبره دیو اولی اضافه کرد و این انگشتر سهرامیز هر چیزی یه ازش بخوای در عرض یه چشم هم زدن برات آماده میکنه. احمد با شنیدن این حرف شگفت زده شده بود دیوها یک صدا گفتن زود باش معتله هستی تو باید این دو چیز رو بین ماست تا اخسین گنیم احمد تکونی به خودش داد و با خودش گفت بهتره چرکی به این دیوها بزنم و قالی چه و در سهرامیز رو دیو دیوها باز هم یک صدا گفتن زود باش پات کن احمد متفکرانه سرش رو خارند و گفت من مشکل شما رو براحتی حل میکنم و دیوها یک صدا گفتن جوری احمد گفت شما باید قالیچه و انگشتر رو اینجا پیش من بذارید اون وقت من سنگ بزرگی رو از این کوه به طرف پایین سر می کنم هر شما به دنبال اون سنگ برید هر کس اول از همه سنگ رو گرفت و پیش من آورد قالیچه مالونه. یکی از دیوار فرسید دست انگوشتر چی میشه؟ احمد پاسخ داد انگشتر مال نفر دومه که بعد از نفر اولی پیش من برگرد یکی از دیوا با ناراحتی گفت او بس تکلیف نفر سوم چی میشه احمد لبخندی زده گفت اون دیگه باید از شانس و اقبال خودش گلو و شکایت کنه خلاصه دیوها شرط احمد رو پذیرفتند احمد فوراً سنگ بزرگی رو از بالای کوه به طرف پایین انداخت. سنگ با سرعت زیادی رو به پایین گلتید و دیوها هم با عجله به دنبال اون به طرف پایین دویدن. احمد بدون فوت وقت انگشتر رو در انگشت دستش کرد و به همراه سگ کوچولو و گربه روی غالیچه سهرامیز نشست و به اون گفت ای غالیچه سهرامیز ما رو به خونه خودمون ببر. قالیچه از روی زمین به هوا بلند شد و در یه چشم هم زدن اونا رو به در خونشون رسوند ننه احمد از دیدن اونا تعجب کرد و تا خواست چیزی به زبون بیاره احمد رو کرد به انگوشتر گفت ای انگشتر سهرامیز من از تو قصری میخوام که اونقدر بلند باشه که سر به ابرها بکشه و یه خشت اون طلا باشه و یه خشت دیگش نقره باز هم در یه چشم هم زدن کسری به همون شکل و که احمد خواسته بود در برابرشون حاضر شد نانه احمد هاجو واجو با چشمان شگفت زده محو تماشا و شکوه جلال غص شد و بلاخره طاقت نیورد و از شدت تعجب و شگفتی از حال ره. کم, کم وصف شکوه و جلال قصر رحمت در تمام شهر پیچید و به گوش پادشا هم رسید پادشاه که از شنیدن این خبر ناراحت و عصبانی به نظر می رسید وزیرش رو صدا کرده گفت وزیر شنیدن پسری به نام احمد قصری ساخته که قصر من در برابر اون مثل یه آلونک به درد نخوره این خبر درسته؟ وزیر تعظیم کرد و پاسخ داد ی آولم به سلامت بله درست شدید پادشاه گفت تو باید پرده از راز شکوه و جلال این قصر برداری تا منون و تصاب کنم و از چنگ این پسرک تازه به دوران رسیده درش بیارم وزیر با احترام جلو اومد و دست پادشاه را بوسید و گفت جانم به فدای شما از دست من کاری ساخته نیست ولی میگن توی شهر پیر اجوزه هست که حلال هر مشکلیه و از دستون هر کاری بگین ساخته است پادشاه خوشحال شد و فورا دستور داد پیرزن رو به نزدش بیرن و چند لحظه بعد پیرزن در برابر پادشاه ایستاده بود پادشاه خواستش رو با اون درمیون گذاشت و پیرزن قول داد که هم پرده از راز شکوه و جلال قصر احمد برداره و هم کاری کنه که پادشاه اون قصر رو تصاحب کنه. پیرزن به افتاد و غروب بود که به در قصر احمد رسید. پیرزن ننه احمد رو که دید که در کنار قصر ایستاده فکری به خاطرش رسید. با آه و ناله جلو رفت و چند قدم این که برداشت یه خودش خودشو نقش بر زمین کرد. ننه احمد که این صحنه رو دید دلش به حال پیرزن سوخت و به کمکش اومد و ازش پرسید ای hey خواهر کجا داشتی میرفتی. پیرزن با هیلیگری و چرزمونی پاسخ داد ای خواهر جان دردت به جان این خواهر فقیر و بیچیز من که جایی رو ندارم که برم تا حالا هم با سر لطف و کرم آدم های با انصافی مثل شما ها زنده موندم و نفس میکشم. خلاصه پیرزن زن عجوز اونقدر مظلوم نمایی و چرب زبونی کرد تا اینکه ننه احمد اون رو به داخل قصر برد و یه قضای حسابی بهش داد پیر زن که فرصت رو مناسب دید با کنجکاوی پرسید آه، ای خواهرجان جان الهی که صد سال دیگه با همین خوشی زندگی کنی ماشالله ماشاءالله به این ثروت و دارایی بعد با زید یکی پرسید خواهر اگه فضولی نباشه دلم میخواد بدونم این قصر به این قشنگی رو کی براتون ساخته؟ ننه احمد هم با ساده دلی تموم ماجرار رو برای پیر زن هیلگر تعریف کرد هوا رو به تاریکی میرفت پیرزن که به مراد دلش رسیده بود یهو چهره در هم کشید و با ناراحتی و آه ناله گفت وای وای خدا سرم سرم درد میکنه دارم میمیرم الان این وخت شب چهجوری برم وای سرم ننی احمد با دلسوزی و مهربونی گفت خواهرچان ناراحت نباش شب رو همینجه بمون. پیرزن که همین رو میخواست از شادی ننی احمد رو در آغوش کشید و اونو دعای خیر کرد. موقع خواب که رسید پیرزن با آه ناله در گوشه کنار غاریچه ی دراز کشید و در حالی که وانمود میکرد به خواب رفته صدای خورپوفش به هوا رفت. نیمه های شب پیرزن که مطمئن شد همه در خوابن از که به را داشت و داروی بیهوشی رو که قبلا آماده کرده بود بیرون آورد و نزدیک دماغ احمد و ننش گرفت بعد انگشتر رو از انگوشت احمد در آورد و آروم و بیصدا رفت روی غالیچه نشست و گفت ای غالیچه زهرامیز احمد و ننش رو همینجا بذار و منو به قصر با ببرم هنوز حرف پیرزن تموم نشده بود که پیژن در برابر پادشاه حاضر شد همه ماجرا رو برای اون تعریف کرد و ما بشتوید از احمد و ننهش اونو از خواب که بیدار شدن دیدن که نه خبری از پیرزن هست و نه از غصر و مثل گذشته توی همون خونه قدیمی و توی همون وضعیت فقر و نداری به سر می برن. خلاصه باز ننه احمد جراب می و با پول فروش اونها خرد و خراکی کردن سگ و گربه احمد به فکر چار افتادن سگ کوچولو گفت گربه جان احمد ما رو از مرگ نجات داد. حالا نوبت ماست که اون از این وزن نجات بدیم. باید قالیچه و انگشتر سهرامیز رو پیدا کنی. و بعد هر دو برای پیدا کردن قالیچه و انگوشتر سهرامیز برافتدن. رفتن و رفتن تا به قصر پادشاه که حالا همون قصر یه خشتلا و یه خشتنقره احمد بود رسیدن. بلاخره راهی پیدا کردن و وارد قصر شدن آروم و بی صدا وارد اتاق خواب پادشاه شدن پادشاه تو خواب بود و صدای خور وپفش توی تمام قصر پیچیده بود دالیچه یه سهرامیز هم کنار تخت پادشاه پن شده بود اما خبری از انگشتر سهرامیز نبود گربه متوجه شد که وقتی پادشاه نفس میکشه از دهنش نور درخشانی بیرون میزنه فهمید که انگشتر زیر زبون پادشاه پنهونه در این موقع موشی وارد اتاق پادشاه شد گربه فوری پرید و اونو گرفت موش به التماس افتاده و گفت می خواهش میکنم خواهش میکنم من نخور من باید برای بچههای گرسنم غذا من ببرم منو نخور گربه بازرنگی گفت به شرط نمیخوره. تو باید روی سینه پادشاه بری و نوک باری که دومت رو آهسته وارد سوراخ دماغ پادشاه کنی. موش هم به ناچار قبول کرد و دوم باریکش رو وارد سوراخ دماغ پادشاه کرد. پادشاه عطسه ای کرد و همون لحظه انگشتر از دهنش بیرون پی گربه هم. با سرعت اونو برداشت و به همراه سگ روی قالیچه سهرامیز نشستند و چند لحظه بعد در برابر احمد و ننش حاضر شدند و تموم ماجرا رو برای اونو بازگو کردن احمد با خوشحالی رو به ننش کرد و گفت دیدی ننه هیچ وقت نیکی گم نمیشه؟ ننش هم اونا رو نوازش کرد و از اونا تشکر رو قدردانی کرد بعد احمد انگشتر سهرامیز رو به انگشتش کرد و گفت ای انگشتر سهرامیز من همون قصر یه خش و یه خشت نقره رو میخوام و در یه چشم هم زدن قصر مثل خرشی در برابرشون میدرخشید از اون روز به بعد سگ کچولو و گربه در چهار طرف قصر نگهبانی میدادن تا مواد بیانی به اونها نزدیک میشه افثانه غالیچه پرنده رو از سرزمین زیبا و کهان آزربایجان براتون نقل کردم تسوجی تبریزی در افسانه میگه حکیمان را رسم و آیین چنین است که گاهی به اسم سخن سخنگویند و گاهی از زبان دد و دام حدیث کنند و مخصود از آن همه پند گفتن و حکمت ها موختن است ولی این هیلت را به کار برند که عامه تبایع را به گفته ایشان این مرو به کار مشترکی بود است نویسنده و سردبیر زینت صادتپور اجرا مهران دوستی صدا داریوش گودرزی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده درستانی دیگر به